بخش پنجم آخرین سفر کشتی اروا حالا می خواهند بدانند من کی هستم؟ سالها بعد این را با صدای کلوفت مردانش به خود گفت سالها پس از آن که برای اولین بار کشتی هیولاوار اغیانوز پیما بی هیچ نوری و بدون سر و صدا هنگام شب از کنار ده کده همچون کاخی غیر مسکونی عبور کرد طولش از دهکده بیشتر بود و قد و از برج کلیسا بلندتر و در تاریکی شب به سوی شهر مستعمرهی که در طرف دیگر خلیج برای رویارویی با دزدان دریایی پر از سنگربندی و استحکامات بود پیش میراند به سوی بندر قدیمی بردگان و فانوس دریای بزرگی که روشنای تیره و حولاورش هر پانزده ثانیه یک بار ده را با نوار کمرنگ و ماهتابی خویش روشن می‌کرد و و خیابانها را به بیابانی آتش فشانی بدل می‌کرد. گرچه او در آن زمان پسر بچه‌ای بود که حتی هنوز صدایش دورگه نشده بود مادرش اجازه داده بود که تا دیر وقت شب در ساحل بماند تا بتواند به نوار چنگهای باد شبانه گوش فرادهد. هنوز به یاد داشت انگار جلوی چشمش بود که کشتی اقیانوس بیما وقتی نور به فانوس دریایی میتابید پدیدار میشد و انگامی که نور رد شده بود دوباره ظاهر میگشت گویی کشتی مجاز بود که این مسیر را تی کند پیدا و ناپیدا شود به طرف دهانه خلیج پیش برود راه خیش را کورمال کورمال مثل خواب گردی پیدا کند و خود را به راهنمای شناوری که در بندر خلیج علامت گذاری شده است برساند تا اینکه ناگهان گویی سوزنی در دستگاه قطب نما خراب شده باشد، راه خود را به قسمت کم عمق دریا کچ کرد و به گل نشست، در هم شکست و به هیچ صدایی در آب فرو رفت. هرچند چون این تصادفی با سخراها باید صدای شکستن و به هم خوردن آهنها و انفجار موتورها را به همراه داشته باشد تا اجده را که در امیغ ترین خوابها فرو رفته بود و به جنگلی پیش از تاریخ تعلق داشت که با آخرین خیابانهای دهکده آغاز می‌شد و در آن سوی جهان پایان می‌گرفت. از خواب بیدار کند طوری که فکر کند آن را به خواب دیده است اما وقتی که روز بعد گستره باز رخشان خلیش را رنگهای شلوغ و در هم بر همه کلبه های سیاه پوستان را بر بالای تپه های بندر و قایق های قشاخچیان گویانه را انباشته از توتی های زبان بسته با چیندان های پر از الماس دید با خود اندیشید همچنان که ستاره ها را می خواب به سراغم آمده و آن کشتی حیوراوار را حتما در خواب دیدم آنچنان خود را غانع کرد که در این مورد با کسی سخن نگفت و دیگر این منظره را در خاطر مجسم نکرد تا اینکه در مارس سال بعد در همان شب که در انتظار دیدن دلفین های دریا بود ناگهان همان کشتی ماهوم و حولاور را دید که هر لحظه به تناوب ظاهر و ناپدید میشد. با همان مسیر اشتباهی که بار اول در پیش گرفته بود با این تفاوت که این بار آنچنان از بیداری خود اطمینان داشت که دوان دوان رفت تا ماجرا را به مادرش بگوید و مادرش سه هفته یازگار از فرت نومی دیگری کرد که چقدر کارهایت وارونه است. روز میخوابی و شب مثل دوست ها از خانه بیرون میزنی. اغلت پار سنگ برداشته است. مادر که مجبور بود همان روزها به شهر برود و یک صندلی راحتی برای نشستن و فکر کردن به شوهر مردش بخرد. برای اینکه این که صندلی سندلی پس از یازده سال بیوگی زهوارش در رفته بود، فرصت را غنیمت شمرد و از غایقران خواست که به قسمت کم عمق دریا براند تا پسرش به چشم خود آنچه را از پشت پنجره دریا دیده بود ببیند عشق ورزی ماهیها در بهار پنجها ماهی های صورتی رنگ و کلاق آبی که در میان چاههای نرم و لقصندهی میان آنها شیف جمی رفتند و حتی گیسوان سرگردانی که بر اثر شکستن کشتی ای غرق شده بودند هیچ نشانی از کشتی قرق شده نبود با این همه چنان دو پایش را توی یک کفش کرده بود که مادرش قول داد مارساینده با او به تماشا برود بیان که بداند تنها چیز مسلم و ضروری برای آیندش صندلی راحتی است که از عهد سر فرانسیس دریک مانده و او آن را از حراج مغازه ترک ها خریده بود. همان شب رویان نشست تا استراحتی بکند. آهی کشید و گفت آه، اولو فرنوس من. کاش میدانستی که ملک وار نشستن و به تو فکر کردن روی این پارچه مخمل و زربفت و جعبه‌ی جواهر چه اندازه دلپذیر است. اما هرچه بیشتر خاطر شوهر مردش را در نظر میآورد، بیشتر خون در قلبش حباب وار به غلیان می‌آمد و دمه میبست. انگار عوض نشستن داشت میدوید خیس از سرما و تب نفسش پر از غبار تا اینکه پسرک هنگام سپیددم برگشت و مردش را در صندلی راحتی پیدا کرد. با بدنی همچنان گرم. اما تا نیمه گندیده انگار که مار گزیده بود همان بلایی که پس از آن بر سر چهار نفر دیگر آمد پیش از آن که آن مرگافرین را به دریا پرت کنند بسیار پرت و دور تا نتواند برای کسی دیگر تیر بختی به بار آورد، چرا که در عوض قرنها چنان به کارش گرفته بودند که توان استراحت بخشیدنش را از دست داده بود مجبور بود که به جریان زندگی نکبتبار و یتیمانی خود عادت کند به اینکه همه او را عنوان پسر بیوهزنی نشان میدادند که صندلی شوم را بهدهکده آورده بود و بیشتر از دزدیدن ماهی از قایق زندگیش را میگذراند تا کمک و خیر خواهی مردم. کم کم صدایش درگه میشد و خاطرات گذشته را از یاد میبرد تا اینکه شبی دیگر در ماه مارس بر حسب اتفاق نگاهش به دریا افتاد و ناگهان خدای مهربان آنجا آن نهنگ هیولایی پنبه نسوس آن جانور قررنده بیوانوار فریاد زد که بیایید ببینید بیایید ببینید سکها چنان او اوی سر و صدایی به راه انداختند و زنها چنان در چنگ ترسی نامعقود و ناگهانی گرفتار شدند که حتی پیرترین مردان ترسهای بابا بزرگهایشان را به یاد آوردند و هر آسان زیر تخت خواب هایشان خزیدند فکر کردند که ویلیام دامپیر برگشته است. اما آنها که به طرف خیابان دویدند، زحمت دیدن آن خارق العاده را به خود ندادند که ببینند در همان دم دوباره راهش را به سمت مشرق کش کرد و در مصیبت سالیانه خویش در هم شکست، بلکه پسرک را، زیر ضربات مشت و لگت گرفت و له و لورده در حالی که از درد به خود میپیچید به حال خود گذاشت در همان حال با خشمی غریب به خود گفت حالا میفهمند من کی هستم مواظب بود تصمیم خود را با کسی در میان نگذارد اما تمام سال را با این فکر گذراند حالا میفهمند من کی هستم و همچنان منتظر بود که یک بار دیگر آن حیولا ظاهر شود تا آنچرا میبایست انجام دهد از این رو غیداز دزدید از خلیج گذشت و شب را در گذرگاه بندر سیاه در میان هلبیهای های خیارشور جزایر کارائیب در انتظار آن لحظه بزرگ سر کرد چنان شیفته ماجراجویی خود شده بود که این بار برخلاف همیشه جروع مغازه های سرخ ها نیستاد. تا به آدمک های چینی که به تمامی از دندان آج فیل تراشیده شده بودند نگاه کند یا سیاه هلندی را با آن دو چرخای عجیب و غریبشان مسخره کند و مثل دفعات پیش از مالایایی هایی که پوستی به رنگ مثل داشتند و همه جای دنیا را زیر پا گذاشته بودند نترسید در شنگ خیال میخانی پرت و پنهان بود که در آن فیله کباب زنهای برزیلی را میفروختند نظرش متوجه چیزی نبود تا اینکه شب با تمام سنگینی ستارگان بر سرش فرود آمد و از نفس جنگل بوی خوش و شیرین گلهای گردینا و سوسمارهای گندیده بیرون آمد او پاروزنان قایق دزدیش را به سوی دهانه خلیج میراند و فانوس را خاموش کرده بود تا مبادا نظر مأموران گمرک جلب شود هر پانزده ثانیه با بال زدن پرهای سبز فانوس دریایی در اوهام فرو میرفت و بار دیگر تاریکی او را به دنیای ملموس و بشری میکشاند و میدانست که دارد به راهنمای شناور کانال بندر نزدیک میشود نه تنها به خاطر نور چراغ‌های اندوه بارش که شدید تر می بلکه به خاطر نفس کشیدن آب که هر لحظه قمناک تر میشد. چنان در خود فرو رفته پارو میزد که متوجه نشد نفس حولناک کوسه دریایی که ناگهان به او خورد از کدام سو آمد یا چرا شب ناگاه این همه ظلمانی شد انگار که تمامی ستارگان یک بار فرو مردند. و این بدان سبب بود که کشتی هایولاوار آنجا بود با تمام عظمت تصورناپذیرش خدایا بزرگتر از هر چیز بزرگی در دنیا سیاهتر از هر چیز سیاه دیگری در روی زمین یا دریا بوی سی ست هزار تن کوزمایی چنان از نزدیک قایق میگذشت که او می توانست وصلهای فولادی آن را ببیند بدون کوچکترین روشنایی در روزنهای بی انتهای کشتی بدونان که صدای نفسی از دستگاهش برآید، بدون روح سکوت خیش را به دوش می کشید هوای مرده خود زمان استادش و دریای در به در خیش را که در آن دنیای کامل و یک بارچی جانوران غرق شده شناور بودند و ناگهان این همه با پرتوه فانوس دریایی ناپدید شدن و برای لحظه ای بار دیگر به دریای شفاف کارائیب بدل شد شب ماه مارس و هوای هر روزه پلیکانها از این رو تنها میان گویهای شناور ایستاد نمیدانست چه بکند هیجان زده از خود پرسید شاید هم واقعا در بیداری دچار کابوس شدم نه تنها حالا بلکه دفعات پیش هم دچار کابوس بودم اما پیش از آن که فرصت کند که سالش را تمام کند نفسی مهیب و رازامیز چراغهای گویهای راه شناور را از اول تا آخر خاموش کرد و وقتی نور فانوس دریایی مسیرش را نمود کشتی حیولاوار بار دیگر ظاهر شد این بار نظم قطب نماهایش مختل شده بود. شاید حتی نمیدانست در کدام قسمت از اقیانوس حرکت می کند کورمال، کورمال در تاریکی به جستجوی کانال نامرئی بود اما در واقع داشت به طرف سخرهها حرکت میکرد. با الهام و مکاشفه‌ای مقاومت ناپذیر دریافت که این بدبختی راهنمای شناور آخرین رمز و کلید این جادوست فانوسش را در قایق روشن کرد نوری سرخ و خفیف از آن میتابید که دلیلی نداشت هیچیک از دیدبانهای برج را متوجه خود کند اما میتوانست برای ناخدا به منزلی خوشیدی را باشد چون در پرتوان نور کشتی هیولاوار مسیر خود را پیدا کرد و با منوری سرشار از سعادت رستاخیزی وارد معبر اصلی کانال شد، آن وقت همه چراغهایش یک دفعه روشن شد طوری که دیکهای بخارش دوباره با سر و صدا به کار افتاد ستارگانش در آسمان پدیدار شد اجساد ایواناتش به اماغ فرو رفتند انبوه بشخابها و بوی چاشنیها در آشپزخانهها به هم آمیختند و صدای ارکستر که در عرشهای ماه موسیقی می نواخد. و صدای کوبش شریانهای اشاغ دریایی در سای روشن کابین ها به گوش رسید. اما هنوز چنان خشمی خشمی کهنه را با خود یدک میکشید کشید که انان خیش را به دست هیجانش نسپرد و نیز واهمه ای از این اعجاز و روی داد به دل راه نداد. مسمم تر از همیشه با خود گفت حالا خواهند فهمید من کی هستم؟ بستل‌ها نشان نشانشان خواهم داد و به جای اینکه خودش را کنار بکشد آن دستگاه ایولائی او را زیر نگیرد به پارو زدن در پیشاپیش آن پرداخت چون آنها حتماً باید حریفشان را خوب بشناسند و او همچنان با فانوسش به راهنمایی کشتی ادامه داد تا این که آنقدر از فرمانبری کشتی مطمئن شد که بار دیگر آن را واداشت تا مسیرش را از مسیر لنگرگاه ها تغییر داد. کشتی را از کانال نامرعی به بیرون هدایت کرد و افسارش را همچون بر دریایی به دست گرفت و به سوی ده خواب رفته کشند کشتی سرزنده و شکست ناپذیر در برابر مشعلهای فانوس دریایی که دیگر مرعی نبود بلکه هر پانزده ثانیه یک بار آن را تبدیل به آلومینیوم می اکنون سریبهای کلیسا فلاکت ها و وهم و خیال با حالتی برجسته و آشکار نمودار می‌شدند و کشتی حیود همچنان پشت سر او می‌رفت با هر چه در درونش بود سردرپی فرمان داشت با ناخدایش که کنار بخاری به خواب رفته بود با گاوهای های گاف بازیش در میان یخ یخچالهایش با بیماری تنها در بیمارستان کشتی، با آبهای مانده آبنبارهایش. با ناخدای محکوم که سخره را با لنگرگاه ها اشتباه میگرفت. زیرا در آن دم ناگهان قُرش عظیم سوت کشتی آغاز شد و او یک دفعه از فوران بخاری که بر سر و رویش میریخت سراپا شد و قایق که به کسی دیگر تعلق داشت نزدیک بود واژگون شود اما دیگر خیلی دیر شده بود چون صدفهای خط ساحلی به چشم میخورد سنگهای خیابانها پیدا بود. خانههای دیرباوران و سراسر دهکدهها با نور چراغهای هراسناک کشتی روشن شده بود. و او به زحمت توانست کنار کشد و برای آن جریان وحشی و ردازا جا باز کند و در اوج آن همه آشوب و آشفتگی فریاد برآورد ترسوهای بزدل اینک این شما و این هیولا یک ثانیه پیش از آن که کشتی پولادین حیولایی زمین رازی و رو کند و صدای به هم خوردن دلنگیز نوت هزار بطری شامپانی یکی پس از دیگری از این سر تا آن سر کشتی به گوش برسد، روشنایی همه جا گسترده شد و دیگر سپید دم ماه مارس نبود بلکه زهر درخشان روز چهارشنبه شنبه بود، و او می توانست با سرور و شادمانی مردم ناباور را با دهانهای باز بنگرد، که متفکرانه به بزرگترین کشتی اقیانوس پیمای این دنیا و آن دنیا چشم دوخته بودند که در مقابل کلیسا به گل نشسته بود. سفید تر از هر چیز، بیست بار بلند تر از برج ناقوس کلیسا و تقریبا نود هفت بار درازتر تر از ده کده. اسمش، با حروف فلزی روی بدنش نقش شده بود حلال شیلک و آبهای باستانی و بیرمغ دریاهای مرگ از همه زویش فرو می چکی.